بسم الله الرحمن الرحیم لله رب العالمین صلاح و على اشرف الانبیائی و سید المسلین و آله و صحبی اجمعین اما بعد ابتدای امسال بحث اون نشانه هایی خواهیم کرد که رخ داره میده و همچنان هم هست و ما با سر سرکار داریم و لازمه این که ما میگیم نشانه های قیامت هستن این نیست که لازمهش بد باشه یا این که حرام باشه نشانه هست اخباره ما توی یکی از نشانه‌های های قیامت بحث انشقاق ماه رو کردیم اخترابت ساعت و انشقل قمر قیامت نزدیک شده یکی از نشانه های نزدیک شدن نزدیک شدن قیامت اینکه قیامتی هم هست قیامتی هم برقاق شد چیه اینکه انشقاق ماه رخ داده که در حدیث داریم که رسول صلی الله علیه و سلم اشاره به ماه میکنن و ماه دونی میبشن از جمله نشانهای قیامتی که بیشتر دوستا فکر کنم یا همه شاید حفظ باشن حدیثی که تو 40 هست حدیث جبرئیل وقتی که میاد زانو به زانو رسول الله صلی الله علیه و سلم می نشینن و بعد سوال میپرسن اولیش از اسلام مل اسلام دومیش از ایمان مل ایمان سومیش از احسان مل احسان همه اینها رو شما میدونید اینجا وقت شرح دادن این مسائلی که تو حدیث جبرائیل اومده نیست جبریل در خطام سوالاتش سوال میپرسه متى قیامت کی برپا میشه رسول الله صلی الله علیه و وسلم میفرمان من مسئولو عنها باعلى من السائل کسی که کس سوال داره میشه من یعنی داناتر از اون کسی که کس سوال میکنه نیست یعنی من نمیدونم شما هم نمیدونید هیچکس نمیدونه بعد رسول الله صلی الله علیه و وسلم میگه من از نشانه هاش بهت میگم در روایت اشراط و درجات امارات و هر دو تا یک معنا هستن لفظه في القرآن فقد جاء أشراطها أشراطها شريط نشانه أماراتها هم مهمون بمهم معنىها بمعنى نشانه هس ونجاهز رسول الله صلى الله عليه وسلم دوة مورد ذك من نشانها قيامات در اون محفل در اون جمع صحابي حضور داشتن امتنا امتنا مقفت حب زيد اوليش انت لدى لدى الامة ربتها ودى الرواية ربها وربتها وان ترى الحفاء العراة العاله يتطاولنا في البنيان رعاشة در بعض الرواة ومدب حتى ترى العالم يتطاولنا في البنيان يك باب خاصي در كتابية حديثي مداري ب باب تطاول در بنيان تطاول بحث اني ك در ساخته من بلام بشه ما يبيش يعني بقول معروف چند هن تبقى وريخوا الدرس بكونه لون شيء كي بحثهم مد نظره دوتا قسمت قسمت اولي انتلد الامه ربها وربتها ود الروايه ربتها حتى يشتقول العلماء ذكرن در این باب اول اولیهم خطابي رب ربها وربتها در روايتي امام احمد والشيخ المني امام احمد روایت میکنه در ربها وربتها خطابي رحمه الله میگوت منظور از این کنیز ها زیاد خواهند شد دلالت <سؤال> بر فتوحات اسلامی میده اینقدر فتوحات میشه که کنیز زیاد میشه و این میگه قول جمهور ائمه اهل علم امام ابن کسیر ابن حجی ابن حجر رحمهم الله این تفسیر رو رد میکنن میگن که بحث کنیز و فتوحات اسلامی در زمان رسول الله صلی علیه و بوده و اینجا بحث اون چیزهایی که نبوده یعنی اون چیزهایی که برای صحابه یک معلم نیست یک چیز واضح و آشکاری نیست بس اون چیزی که روح خواهد داد دومین قول از اقوالی که در, این، در تفسیر این حدیث اومده بحث اینه که گفتن کنیز یک کنیز پسری به دنیا میاره دختری به دنیا میاره که اون پسره خوصا با این لفظ که اومده انتل, انتل دل امت رب اون پسره میشه پادشاه و اون پادشاه تمامی کسانی که زیر دستش هستن، رعیش هستن. اون رعی میشه رب، اون رعی میشه رب. هرچند که این گفته هم بازم خیلی از علما تضعیفش میکنن به خاطر اینکه در بعضی از روایت آمده اومده رب ربته. بعضی دیگر گفتن که منظور از این حدیث اینه که که خیلی کنیز زیاد میشه و کنیزها که زیاد میشن، اشخاص کنیزهای خودشون که برایشون بچه آوردن میفروشن. و ناخداگاه اون فرزند میاد مادر خودش رو می اینم این هم یکی از اقبال ولی که اون چیزی که من خواستم اینجا اشاره بکنم اون تفسیری که از معنای این حدیث گرفتن و گفتن مفهوم حدیثه اونم گفتری خیلی از علمان مثل ابن امام ابن حجر هست از قلانی رحمه الله می این تسمت از حدیث فرمودی الله صلی الله علیه وسلم بیانگر حقوق والدینه انتل دل امت ربتها یعنی همونطور که پد سرپرست خانواده هست اون مادر بیچاره که زحمت میکشه برای فرزندش نه ماه توشکمش شکمش بعد او را به دنیا میاره شیر بهش میده بزرگش میکنه به جایی که اون مادر بشه سرپرست اون فرزنده میشه سرپرست مادرش خیلی از علما از محدثین این چنین حدیث را تفسیر کردن با توجه به اون کلماتی که در حدیث اومده و او معادلی از لغت هم داره خصوصا کلمه رب که معنی سرپرسته گفتم شاید در حدیث حشدار باشه، شاید حدیث خبر باشه، شاید اون حدیث از نشانهای قیامت نشانگر حرمت یک چیزم بده، مثل حدیث لاتا قوم الساع حتی تا کمی فرمایم استحلون الحرة والحریرة والمعازف تا در انتهای حدیث نش قیامت برپا نمیشه بعد میاد آخرش میگه رسول الله صلی الله عليه وسلم تا اینکه معازف آلات موسیقی حکم حلالیت بهش داده بشه. ما قبلا این حدیثو در در مناظره آهنگ توضیحش دادیم. هم از لحاظ اسنادش هم از لحاظ متنشه اون چی گفتم مد نظر از نشانه قیامت بحث این حدیث با یک دید خاصی باید بهش نگاه بکنیم به این قسمت از حدیث خصوصا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که یادی از نشانه های قیامت میکنن تمامی این تفسیراتی که ما گفتیم برای خودش وجهی داره خصوصا تفسیر آخری که ابن حجر رحمه الله در فتح الباری یاد میکنه که حقوق زیاد میشه بی احترامی به پدر مادر زیاد میشه خداوند توصیهاش در قرآن به نگه داشتن حرمت پدر و مادر زیاده وقت لهم جنا حذل من یا خدا میگه و لا تقل لهما اف افا نمیگه دیدید بعضی از دوستان یا برادر خودتون یا خودتون گاهن وقتی که مادر میاد میگه فرزن این زباله ها رو مثلا ببر ته کوچه یا سر نمیدونم فلان سر کوچه ببر یک افی شاید بیرون بیاد باشه اون افه بیرون نیاد کنایه هست کنای از چی؟ تقل لهم ولا تقل لهم کنای از رنجش حرفی نزنید که اون مادر برنجه بی احترامی به اونها نکنید حفظ احترام ها حفظ حرمتها حرمتها نگه داشته بشه خصوصا والدین در در تمامی ادیان این چیز هست و هر عقلی این رو میپسنده مشریکین هم خوب این قضیه ها رو درک میکردن. مثلا شما ابو سفیان رو یاد داری تو سیرت خوندید وقتی که هرقل ازش سوال می‌پرسید درباره رسول الله صلی الله علیه و سلام چی میگه؟ میگه پیام این شخصی که اومده به عنوان پیامبر دستور به صله رحم میده، خوبی، نمیدونم راستگویی. خود ابو سفیان رضی الله عنه گوید دنبال این میگشتم که شاید یک عیبی از رسول الله صلی الله علیه و پیدا کنم. می‌دونسن هممون می‌دونیم حتی اون غربی لادینش همون کسی که خدا و پیغمبر خدا و هیچ دینی شده هم قبول نداشته باشه چیزی به اسم حرمت والدین داشته باشه سان خداوند در فطرت انسان گذاشته که حرمت بزرگتر حفظ بشه حتی اگر پدرمون نباشه شما اگر تو کوچه ای برید گذر بکنید یک پیرمردی دزدی بکنه یک شخصی بیاد کوتکش بزنه میذارید غیرتتون غرورتون اجازه نمیده خود به خود فطرتان میگید من بخت پیرمردو بذار میمیره دست بکش طبیعت انسان سرشت انسان خدا در ذات انسان صفت الرحم و مروت و این صفات رو گذاشته لطف گذاشته در ذات ما هست الا اون کسی که فطرتش ها متک رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، فترتها عوض شده باشن ما من مولود إلا یولد علی فطره فابواه یهودانه او مسخو نصرانی او ممجسانه كما تنتج البهیمه بهیمه جمعا هل ترا فيها من جدعاء پدران هستن یهودی میکنن مجوسی میکنن نصرانی میکنن همونطور که هیون هیون انسانی میبی یا میاره گوش بوریده زبان بوریده بینی بوریده توش نیست انسان هم همین فترت فطرت ولی که جامعه هست که انسان رو بد میکنه ما الان سر کار داریم میبینیم بچه‌مون تو مدرسه داره بزرگ میشه با یک فرهنگ بد با یک فرزند با یک فرهنگ فرزند سالاری بچه داره مشا مامان آب بیار مامان فلان چیز میخوام مامان این میخوام پدر اون میخوام دستور داره میده این چیزا جدا داره میگم این چیزی که ما ازش مینالی و می رنجیم و میبینیم این فرهنگ بد این فرهنگ زشت این فرهنگی که هیچ ادب و احترامی توش نیست اگر ادب و مروّت و شخصیت ها شکسته بشن خیلی اون جامعه جامعه از لحاظ فرهنگی به نهایت افتش رسیده در پایینترین ترین درجه حرمت شکنیش رسیده شما الان اینجا نشستید پدرانتون زحمتتون کشیدن تا اینکه که اومدید اینجا نشستید زحمتتون کشیدن شما هم روزی فرزندانی را بزرگ میکنید میرید زحمت میکشید به خاطر افت خودتون اززواج میکنید بعدم بچه هایی خدا بهتون میده شما خودتون در نظر بگیرید بچه تو روی خودت بیسته بگه نه من این کار رو میکنم اون کار رو نمیکنم بچه بیاد مشروب کار بشه معتاد بشه اون پدران نگاه بکنید چقدر پدرانی که بچه هاشون حقوقشون میکنن یا سرپیچه از دستوراتشون میکنن نگاه بکنید اون پدر چه حال روزی داره چقدر سرشکسته از اون پدر کاری نکنیم که روزی این بلاهایی که یا اون کارهایی که ما انجام می دیم بر سر خودمون بیرون می تما تو و تو دان همونطور که میکنی بر سر خودت هم در خواهد اومد پس همونطور که ما به مردم تو جامعه کوچه و خیابون به فرزندان خودمون میگیم خرمت والدین با نگه داشته بشه از باب اولا ما طلاب علم اولش خودم توصیه به خودم به توصیه پروردگاره در قرآن به تمامی مسلمین خطاب فقط تنها به قول معروف. فقط به رعیه نیست به همه هست چه انسان بزرگ باشه چه کوچک باشه در هر سن سنی باشه و گفتم اینو از باب تذکر بهتون میام سعی بکنید بر هوای نفس خودتون غلبه بکنید شاید خوابید شاید با دوست و رفیق قول و قرار دارید ولی رسیدگی به پدر و مادر ادای حقوق پدر و مادر اولاتر از دوست و رفیق موازین عوض نشه معیارها عوض نشه این از باب توصیه میگم گفتم اول بخونم ما میبینیم تو جامعه مادر توی خونه نشسته میترسه این که بگه فرزندم از خواب بیدار شو من رو ببر بیمارستان ببر خریدی دارم زنگ میزنه آژانس تاکسی تلفنی بیاد در منزل تا این مادر بره خرید بکنه بر بگرده اگر خداوند نگفته در قرآن وقر نفی بیوت کن خطاب به زنان نیست که در منزل بشینند بزیفه زن بره بینو خرید بکنه زشت نیست زن حالا ازری هست شوهر نیست بچه کوچیک یه چیز زشته، ما میبینیم توی بازار مادرها هی میان خرید میکنم، هی میری بازار میبینی، بازار ماهی فروشی میبینی، مادرها اومده داری ماهی میخره. خب پدر کجاست؟ نیست سر کاره بچه کجاست؟ بچه مین خیالش نیست، فقط میخواد غذا آماده جلوش گذاشته بشه تا بخوره. پس این مسئله ای که گفتم از باب کنایه این جاراسودا سعیم بهش اشاره میکنن و شایدم معانی دیگری داشته باشه، ولی یکی از معانیشال این باشه باید ترسید. باید بر حذر باشیم از این که این چینین اخلاق زننده از ما بروز پیدا نکنه نباشیم جز کسانی که اقامت حجت شده باشه و ما بدونیم و روز قیامت ما بدونیم که اف گفتن نگفتن به پدر مادر گناه روز قیامت جلوه چشانمون بیارن اون گناهان روی کفه گناهانمون بذارن و گناهانمون بر ما سنگینی بکنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفريمان رغم أن فرجل أدرك إحدى والديه أو والديه ولم يدخلاه الجنة بنيء شخص بخاط ملدي بشه، قدر ما درش زنده باشان، قدر ما درش أراب بهش نبره، بلى. في الروايات دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يف، إلزمهما فإن الجنة تحت أقدامها أو تحت قدميها، إلزمه. ملازمت مادرت مادرت رو رها نکن به مادرت بچسب نهایت تلاشت بکن در خوبی و احسانت همه اینها نیکی ها هست که در ترازی حسناتت نوشته خواهد شد الزمها فإن الجنه تحت قدميها او قال صلى الله عليه و چون بهش زیر پای مادرت بعضی از سوره این حدیث زیفه بعضی هم حسن شیخ ال هم رحمه الله با این لفظ الزمها فإن الجنه تحت قدميها با این لفظ تحسینش میکنه و تحصیحش میکنه پس این دری از درهای بهشته خوبی کردن به والدین خوبی کردن به والدین دری از درهای بهشته از دستش ندیم حرمت والدین رو نگهبه بداریم نهایت سعی و تلاشمون رو بکنیم که راضیشون نگهبه داریم بداریم ترازی اعمال خوبی هامون رو سنگین بکنیم اما قسمت بعدی حدیث و تر الحفا تا آخرش یا تطاولون فی البنیا با الفاظ مختلفی من بیش از پنج تا لفظ این حدیث دیدم با های متعددی هم در مصد عبدالن محمد در مصد محمد، در سنن ترمیزی و جاهای دیگر با الفاظ متعددی اومده روایت شاید با معنا و شاید در مجالس متعددی این حدیث را شنیده باشن اون چیزی که مهم از این حدیث از یک جهتی بحث یک از نشانه ها هست و اونم این که اشخاصی که در صحرا بزرگ اهل دنیا میشن اهل مال و ثروت میشن این یه قسمت از حدیثه ولی اون چیزی که شاید برداشت بشه از حدیث بنوان عنوان کنایه و اونم این که انسان هدفش فقط مسابقه در دنیا باشه یتطاولون خصوصا تطاول اومده که من ساختمان من بلندتر از ساختمان فلانی باشه من ده طبقه میزنم اون 20 طبقه بیاد بزنه فقط بحث مسابقه رو دنیا باشه بحث اهمیت دادن بیش از حد به دنیا رسول خداصن در احادیث متعددی اشاره به این قضیه داره از نشانه قیامت رو یاد میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم این که انسان به کسب کشاورزی و خرید و فروش و معامله و جهاد در رها بکنه دین خدا رو رها بکنه به خاطر چی؟ به خاطر دنیا هم دنیا غم دنیا بر ما غلبه نکنه خداوند در قرآن وقتی که بحث از مشرکی میکنه و من الناس من يتخذ من دون الله اندادن یحبون هم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله از مشرکین معبودات خودشون را از خدا بشرف دوستارن والذین آمنوا اشد حبا لله اونایی که خدا را دوستارن حبشون نسبت خدا خیلی قوی تره نمیخوام خودم رو قیاس بگیریم با مشرکین که معبودات خودشون رو میپرستیدن بحث پرستش نیست، بحث برتریه اونقدر حب دنیا بر ما غلبه بکنه که ما بشینیم در مغازه باز بذاریم نماز از فوت بشه این خوبه؟ این بده این برای یک انسان مؤمن که ادای ایمان داره ننگه، زشته حب دنیا برش غلبه کرده من پارسال تذکر دادم امسالم بازم تذکر میدم چون روزی از روزها اومدم توی همین مسجد الان نمازتون 6 صف و نیمه تا هفت صف میرسه نماز صبح متاسفانه پنج صف دیدم این دو صف کمتر بود سبب نشه دنیاتون، سبب نشه موبایلتون، سبب نشه واتساب رو مشغله مجغله دنیاویتون این که شب دیر بخوابید صبح نماز صبح تو مسجد نباشید این از باب تذکر بهتون میگم نشان، یکی از نشانه های منافق اینکه نماز صبح و نماز عصر در جماعت نمی و همه شما هم میدونید این خصلت شاید در یکی از ماها بیاد بترسیم از نفاق بترسیم از اینکه روز قیامت رفیق عبدالله ابن ابی ابن سلول باشیم بترسیم از اینکه رفیق اونهایی باشیم که فدرک درک الاسفل من النار خداون یاد ازشون میکنه پس درین جای من باشیم اسلام به قول نیست اسلام به عمله باید با عمل من ثابت بکنیم که با هوای نفسمون مبارزه میکنیم حب خدا بر حب نفس ما برتری داره از خواب ما عزیزتر نیست حب نماز حب خدا حب سجده و رکوع از خواب عزیزتر نیست از هیچی عزیزتر نیست از پدر و مادر عزیزتر نیست پدر و مادر عزیزن ولی نبی, نبی قیمت نماز لا عطل مخلوق فی معصیت الخالق در معصیت خالق دیگه هیچ کسی دیگه در مقابل خدا حرمتی نداره حق خدا هست که برتری بر تمامی حقوق داره اینو از باب تذکر بهتون میگم اون چیزی که ما براش آفریده شدیم تجارت اخروی اینجا اومدیم برای تجارت اخروی اومدیم کالای گران خدا رو به دست بیاریم من خاف ادلج کسی که ترسید همون تو که شب شخص با ترس و وحشت حرکت میکنه من خاف ادلج و من ادلج بلغ المنزل و کسی که بترسه با مواظبت و با دقت راه بره به منزل میرسه منزل ما کجاست برای چی آفریده شدیم برای بهشت خدا بعد رسول الله ص میفرمايان الا ان سلعه الله غالیه الا ان سلعه الله غالیه کالای خداوند بهشت خداوند که برای این تجارت آفریده شدیم عبادت بکنیم تا اینکه خداوند ما را رستگار بکنه از ما راضی باشه ما رو وارد بهشت بکنه چیه الا این نسل الله قال عبادت خداوند که ما را وارد بهش میکنه راه رسیدن به رضای خداوند برتری دادن حب خدا بر هوای نفسه بر حب دنیا هست این از باب تذکر گفتم معاذب باشیم از رفتارمون اینجا اومدیم رفتار و آداب و خصوصا با خداوند یاد بگیریم همون که در جلسه گذشته هفته قبل صحبت کردم درباره اخلاق و گفتم اخلاق با خداوند داریم و با مردم داریم. اخلاقمون رو با خداوند درست بکنیم. حبمون رو با خداوند قبیش بکنیم. اینجا اومدیم برای تقویت ایمان. مبارزه بکنیم با هوای نفس با وسوسه شیطان. صلی الله علیه محمد و علیه محمد.